نردبان جاودان وصل مجموعه سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت موضوع سخنرانی فلسفه تبررا در زیارت آشورا بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و, و علی آله تیبین تاهرین المعصومین لا ما بقیت الله فی الارزین اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام و يعود السلام سبحان ربك رب العزه عما يصفون و على المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام عليك يوحنا و برحمت الله و بركاته السلام على الائمه الهادين المهديين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 السلام على علی بن الحسین زین العابدین السلام على محمد ابن علی باغر علم النبی السلام على جعفر بن محمد السادق السلام على موسف بن جعفر القازم السلام على علی بن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علی الجباد السلام على علی بن محمد الحادي السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري السلام على الحجت ابن الحسن القائم اللهم كن لوليك الله الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في hazardous ساعة وفي كل ساعة ولی یا و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا تا تسكنه ارز ارزكته و و تمتعه فیها طویلا اللهم عجل ولی کل فرج و من انصار هی و اعوانه خوب الحمدلله که دو ماه محرم و سفر را همگی به لطف الهی موفق بودید امیدوارم که مورد توجهات خاصه حضرت حق و انایات ویجه حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم حلفدا قرار گرفته باشد و از فیوزات خاصش به گونهی برخوردار شده باشیم که آثار سازنده و معنویش تا محرم دیگر قوی تر از سالهای گذشته در همه ما اثر گذار باشد الله خب روز تاجگذاری و آغاز امامت وجود مقدس حضرت بقیه الله الاعظم است من اجازه میخوام بحث امشب رو هم طبق روالی که شبهای جمعه قبل از محرم داشتیم نداشته باشم. بنا به جهتی ادامه بحث زیارت رو که چند جلسه اخیر شروع کردیم اما از یک دید خاص، من ارز کردم که در زیارت ما یکی از مباحث بسیار مهم محتوای زیارات معصوره است. زیارت معصوره یعنی زیارتی که از ناحیه معصوم علیه السلام وارد شده و فرموده است اگر می خواهید پیغمبر را یا امام را زیارت کنید با این نحوه زیارت کنید مثل زیارت جامعه مثل زیارت امین الله و زیاراتی که وارد شده از جمله زیارتهایی که خیلی برو تأکید شده و اسرار بسیاری دارد که اگر خدا خواست و من از آرزوهام اینه که توفیقی پیدا کنم یه لاعقل پنجاه جلسه در موردش بحث کنیم زیارت آشوراست که خیلی بحث داره خیلی بحث داره و نکته های عجیبی در زیارت آشوراست فقط به مناسبت بحثی که ما داشتیم تا به اینجا رسید من یک فراز رو از مطلبی که در زیارت آشورا بدان خیلی توجه شده و بسیاری از مخالفین زیارت با اون نکته انگوش گذاشتن و ایراد گرفتن و ایرادشون بیشتر به خاطر و اون مطلبه اونو مخاومم شب بحث کنم و اون است که در زیارت آشورا به کار رفته خب زیارت آشورا لعن داره واقعیتیست اللهم الان اول ظالم زلم سمه ثانی و سالس و رابه یا اللهم الان آله زیاد آله مروان آله صبح یا ها دیگه همه توان الحمدلله کرارا خونده اید و حفظید و, و اینها. بگن آیا این لعن کردن ها درست است که در زیارت آشورا شما این مقدار لعن میکنید و چون در زیارت آشورا لعن زیاد به کار رفته پس ما زیارت آشورا رو خیلی مثلا مورد پذیرش قرار نمیدیم بعد مخالفت ها رو از اینجا شروع میکنم من برای اینکه این مطلب روشن بشه اجازه بدید اولین منبع ما که قرآن کریمه ما پیرو قرآنیم به عنوان مسلمان البته اگر با غیر مسلمان بخوایم بحث کنیم یه جور دیگه بحث میکنیم اونم به لطف الهی با معیارهای عقلی میتونیم بحث کنیم ولی فعلا چون روی سخن ما با مسلمین است. برخی از مسلمون ها این اشکال رو می که شما چرا در زیارت آشورا انقدر لعن می کنید اگر این زیارت از طریق معصوم وارد شده یا اونگونه که شما شیعه ادعا می کنید قدسی است از ناحیه حضرت حق وارد شده که اینجوری امام حسین رو از راه دور زیارت کنید یا زیارت‌های دیگه‌ای که گاهی در او این مطالب دیده میشه که بیشتر در زیارت آشورا مطرح است میگیم قرآن کتابی است که برای من و شما با عنوان یک مسلمان اولین منبع است اولین مدرک اولین سنده بریم سراغ قرآن کریم اول یک آیا در قرآن اصل لعن پذیرفته شده یا رد شده ما موارد بسیاری در قرآن داریم که من دو تاش اشاره میکنم اگر اون پنجاه جلسه عرض کردم خدا توفیق بده به اونجور بحثا برسیم که تازه پنجاه جلسهم شاید وقت کفاف نده همه ای آیاتو میشه بحث کرد ولی من دو تا آیه رو اجازه بدید بنا به جهتی به این ترتیبم شروع میکنم آیه اول در سوره مبارکه احزاب آیه شماره پنجاب و هفت اوزو بالله من الشیطان الرجیم انالذین یعزون الله و رسوله به درستی که کسانی که رسول خدا را می کنند، خدا را و رسول خدا را اذیت میکنند لعنه هم الله فی دنیا ول آخره خدا اینها را هم در دنیا هم در آخرت لعن کرده و اعد لهم عذابا مهینا و خدا برای اینها عذاب ای فراهم نموده اولین مطلب اینه که اگر خدا لعن کرده است لعن خدا یعنی چی؟ یعنی خدای یه به دستش میگیره میگه اللهم الان مثلا کسانی که پیغمبر رو عذیت کردن؟ اللهم الان کسانی که من اذیت عذیت کردن؟ لعن در لغت یعنی ترد از رحمت ترد رد کردن دور روندن نپذیرفتن اجازه بدید من عیناً از کتاب لغت براتون بخونم بزرگانی که اومدن این رو معنا کنن مثلا راغب در کتاب مفردات قرآن که معروفه یکی از برجستهترین کتابی است که در لغت قرآن مورد مراجعه همه محققین و علوم است. میگه ترد و رد کردن از روی قذب رو میگن لعن ترد و رد کردن از روی بدومدن و قذب یه وقت ترد ممکنه ترد دوستانه باشه این نه مثلا کسی الان میخواد بیاد سراغ شما حتی این دقت‌ها رو توی لغت کرده دقت بکنید مثلا شما زکامید سرمایه شدید خوردید کسی از راه میرسه دوستش دارید میگه نه یا نه یا جلو به جهت اینکه نگرانید نکنه الان با شما ملاقات کنه او مثلا مبتلای به زکام بشه اینم ترده ولی این ترد لعن نیست این ترد از روی محبته میخواید زرر بهش نرسه من الان زکامم شما به من نزدیک بشید احتمال داره این زکام من به شما سرایت کنه چون شما رو دوست دارم از خودم دور میکنم لذا خودم از شما فاصله میگیرم این نه ترده از روی غذب ترده یا منع از لطف و رحمت از روی بدامدن شما میخواید مثلا حالا در محدوده ما فعلا تا راجب خدا داریم بحث میکنیم بعد راجب خودمون حالا بحث میکنم شما مثلا یه مطلب علمی سنگین مفید ارزندهای رو دارید به یه جمعی یاد میدید یعنی از شما لطفی به اونا داره میرسه از شما رحمتی داره به اونا میرسه فردی وارد میشه شما از اون فرد بدتون میاد او رو لایق شنیدن این مطالب ارزنده نمیدونید میگید نه اینو بیرونش کنید این ترد میتونه معنی لعن پیدا کنه یعنی این خیری که از شما داره به یه جمع میرسه نمیخواد به او برسه میخواد او رو دور کنید پس لعن از نظر صاحبان لغت منجمله در مفردات ترد کردن از روی غضب است راقب اضافه میکنه میگه از خداوند اگر لعن خدا رو بگیم خدا لعن میکند یعنی در آخرت عذاب میدهد در دنیا انقطاع از قبول رحمت لعن خدا در دنیا اینجا نگفت که خدا لعنت میکند در دنیا و آخرت، لعن در دنیا یعنی رحمتش را، انایتش را، اون الطاف الهی که بناز شامل بشه شامل حال او نمیشه قطع میکنه، لعن در آخرت یعنی عذابش میکنه، لذا وقتی که ابلیس در قرآن کریم اومده، خداوند فرمود ما منع که تسجد لما ما خلقتو به یدی، چی باعث شد که من با قدرت توان خودم این مخلوق رو که ایجاد کردم تو ازش سجده نکنی سرباز بزنی؟ گفت انا خیر وقتی این انانیت روخ داد و در بروز داد و در مقابل خدا خدایستان خدا فرمود این نکر رجیم این نعلی که لعنتی الى یوم الدین نه یعنی تو یوم الدین لعنت نیست لعنت یومدین عذابه که عذاب خواهی شد اما تا روز قیامت ولو تو زنده میمونی درسته که عذاب اخروی نداری چون عذاب اخروی مال آخرته. اما ترد شدن از رحمت من شامل حالت شد تو دیگه از های من از رحمت من از انایت من برخوردار نخواهی شد اِنَّ عَلَيْكَ لعنتی الٓا یومدین پس لعن در لغت یعنی ترد از انایت از روی غذب اگر از خدا باشد در دنیا به معنی ترد از انایت و رحمت در قیامت باشد به معنی عذابه. خب در این آیه‌ای که براتون خوندم آیه شریفه پنجاب و هفته سوره مبارکه احزاب میگه کسانی که خدا را عذیت میکنن. خب اذیت خدا یعنی کسی میاد سنگ میزنه شیشه خونه خدا رو میشکنه؟ کسی میاد مثلا فرض کنید که با شمشیر به بدن خدا نعوذ بالله عذیت خدا یعنی در مقابل حکم خدا استادگی کردن. حالا شاهدش از جای دیگه آیه میاره. دین خدا را بازی چه قرار دادن؟ اولیای الهی را عذیت کردن. لذا فرمود الله یغزب و لغزب فاطمه. من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط الله. کسی اولیای خدا را عذیت کنه خدا را عذیت کرده. کسی حکم خدا رو زیر پا بگذاره میسی که خدا رو عذیت کرده کسی که خدا را عذیت میکند و او، رسول خدا را عذیت میکند لعنهم الله فی الدنیا و هم لعن خدا در دنیا شامل حال اوست هم لعن خدا در آخرت شامل حال اوست راقب تو مفرداتش توضیح داد لعن خدا در دنیا یعنی ترده از رحمت و انایتش لعن خدا در آخرت یعنی مشمول عذاب شدنش خب حالا اگر کسی بیاد بگه که این لعن خداست به من و شما چه ربطی داره خدا انایتشو در دنیا نمیده خب صاحب اختیار خداست در آخرت هم عذاب میکنه پس لعن از خدا در حق کسانی که پیغمبر خدا را عذیت میکنن خدا را عذیت میکنن مشمول لعن الهی میشن ولی ما میتونیم لعن کنیم و لعن ما چیگونه باید باشه اگه میتونیم این چیه سوره مبارکه بغره آیه 159 ایناللزینه یکتمونه ما انزلنا من البینات ول خدا ان لزینه به درستی که کسانی که یکتمون ما انزلنا کتمان میکنن کتمان حق یکی از بزرگترین گناهان کتمان حقه پوشندن حقه نزاریم حقیقت آشکار بشه مردم با حق آشنا بشن با ارزشها انس پیدا کنن بلکه نقطه مقابلش باعث کتمان، باعث مخفی کردن، باعث پوشندن، باعث عدم آگاهی مردم نسبت به حق شدن. ان یک یکتمون ما انزلنا من البينات والهدى. تو پرانتز میگم الان بحث من نیست. ولی در روایات ما اشاره شده و بحث قرآنی میشه کرد مفصل منهای روایت از خود قرآن. به لطف الهی میتونم اثبات کنم ولی الان تو مقام بحثش نیستم چون وقت میگیره روایت میگه کسانی که کتمان میکنن اون چرا که من خدا نازل کردم از بینات و خدا بینات به نبوت برمیگرده خدا به امامت این قابل اثبات از قرآن حالی ما فعلا حالا وارد این جزئیات نشیم اون چرا که از خدا نازل میشود از بینات و هدایت روشنگری هایی که خداوند از طریق نبوت برای مردم کرده هدایتی که خداوند به وسیله اولیایش که قرار داده و جلناهم هم تن یهدون به امرنا اینایی که میان تا هدایت کنند به امر الهی کسانی که این بینات و هدایت را کتمان میکنند اینو مخفی میکنند اینو نمیپذیرند با اینا در میافتند من بعد ما بیناه ینا ناسفل کتاب بعد از اون که خدا کتاب رو فرستاد این مطالب برای مردم توضیح داده بود روشن کرده بود اما یه عده پیدا میشن اینا رو کتمان میکنن اینا رو مخفی میکنن اولاائ اونها اونا کسانی هستند که یلعنهم الله و یلعنهم هم خدا اونها را لعن میکند و لعنت کنندگانی هم هستند که اونها رو لعن میکنند این لائنون خداست یا غیر از خداست؟ کسانی که میخوان پیرو دین خدا باشند پس لعن فقط مختص خدا نیست اگر در اون آیه در سوره احزاب میفرماید که کسانی که خدا را و رسول خدا را عذیت میکنند خدا اونها را لعن میکند لعنه در دنیا ترد از رحمت است لعنه در آخرت عذاب نازل کردن اما در این آیه شریفم صد و پنجاو ونو سوره بقره میفرماید آنانی که انچه چرا که خدا نازل کرده است از بینات و هدایت روشنگری کرده برای مردم اینو کتمان میکنن مانع آشکار شدن حق و هدایت میشن اینا کسانی هستند که یلعنهم الله و یلعنهم لائنون هم خدا اینا را لعنت میکند، هم کسانی که میخوان تابع دین خدا بشن پیرو اونچه که خدا در این عالم مقدر کرده باشن لائنونن پس اونام لعن میکنن خب حالا پس سوال ا... یا اشکال اول یا سوال اول حالا با هر تعبیری که بفرمایید اول چی شد پس لعن به معنی ترد از روی غضب است خدا در قرآن میفرماید همان گونه که شیطان رو لعن کردم این ان که لعنتی الایوم اومدین پس تو را ترد کردم از رحمت خودم تا روز قیامت روز قیامت که لعن عذاب نازل میشه در سوره احزابم فرمود کسانی که خدا را اذیت کنند یا رسول خدا را اذیت کنند با همون توضیح مختصری که عرض کردم لعن خدا شامل حال اونا میشه هم در دنیا هم در آخرت لعن در دنیا رو راقبم تو مفرداتش توزی داد طرد از عنایت خودش لعن در آخرت هم عذاب نازل کردن اشکال این بود یا سوال این بود که خب خدا این کارو میکنه من و شما چیکار کنیم مگه ما رحمتی داریم که بخوایم از روی ترد کنیم یا مگه ما میتونیم مثلا عذاب کنیم میگیم لعن ما اولا در دنیاست در آخرت نیست و بعد توضیح میدم به چه صورته و اما این لعنی که در دنیا مطرحه اول از آیه 159 سوره بقره اثبات کردیم که لعنون مطرحه یعنی فقط خدا لعن نمی کند. اگر کسی پیرو خداست او هم باید لعن کنه اما لعن در مورد ما چون دنیا دار تکلیف است و ما مکلفیم ما مکلفیم از جمله تکالیف ما تنفر از بدیه همونطوری که از جمله تکلیف هایی که بر ما شده توجه به ارزش هاست علاقمندی به خوبی هاست گرایش به ارزش های بالاست حالا لذا اگر ما مکلفیم از جمله تکالیف ما لعن است لعن برای ما دو قسم میشه لعن لسانی لعن عملی برای خدا لعن لسانی معنا نداره که خدا تصوی دست به گوشه بشینه بگه لعنت من بر شیطان لعنت من بر شیطان لعنت چون خدا هنجره و زبا همین که میگیم لعنت خدا بر شیطان یعنی همون که خدا فرمود ان علیک لعنتی تردت کردم اذا اراد الله وقتی اراده میکند پروردگار نسبت به امری ای یقول له کن فیکون میشود برای ما این سنها چون لفظ مطرح است ما اعمالی را که باید در این عالم داشته باشیم همونطوری که در بحث ذکر عارفانه مطرح کردم هم ذکر لسانی داریم هم ذکر قلبی ذکر اگر با فکر و عمل ما ام نباشد ما سرزنش میشیم دقت کنیم ما موظفیم ذکر لسانی داشته باشیم به عنوان مثال یکی از اذکاری که خیلی وارد شده همم قبول کردن ذکر تصبیات حضرت تو زهرراست وامول عليهله هااست آقا سی و چهار بار باید بگی الله اکبر سی و سه بار باید بگی الحمدلله الله سی و سه با هم باید بگی صبحان الله حالا نمیشه من جابجا جا کنم به سلیقه خودم میگه یه تصبی حضرت زهراس نه. همینجوری دلت میخواد الله اکبر بگی بگو ولی به عنوان تصبی از زهرا میخوای بگی با سی و چهار بار بگی حالا من تصویر به دستم گرفتم الله اکبر. این ذکر چیه لسانیه ولی زمینی که دارم میگم الله اکبر تو محل کارمه هم پهن کردم تو اتاق کارم نمازمو خوندم تسبید دستمه الله اکبر الله اکبر منشی من میاد میگه طرف اومده میگه 100 میلیون رشبه میدم اینو امضا میکنی 100 میلیون رشوه رو بگیرم الله اکبر الله اکبر همینجوری که الله اکبر میگم امضا میکنم اینجا من مستحق لمت حقولون مالا و تفعلون کبرم مقتنند الله میشم یا نمیشم این ذکر گفتن من معصیته برای که من دروغ میگم نه اینکه حالا ذکر نگم امضا کنم نمیدرا چون من که ذکر نگفتم من الله اکبر من گفتم رشوه گرفتم دیگه رشوه رو گرفتم نعوذ بالله اون گناهی جای خودش محفوظ ولی یه گناه دیگه چرا میکنم لا اقل سجاده رو پهن نکنم لاقل تصویر رو به دست نگیرم به یه بنده خدایی درخواست رشبه کرده بود یکی از بزرگان میگفت ولی ریشش از من پرپشتر بود بهش گفتن آقا شما با این ریش رشوه میگیری گمه ما با ریش تیغ میزنیم قبلا با تیغ ریش میزدیم آقا من اگه میگم الله اکبر خب پس چرا میکنم این ذکر هست لسانی ولی فعل نیست لعنم همینطوره همینطوری که ذکر ما باید لسانی باشد باید باشد من باید بگم الله اکبر ولی باید فکر منم این باشه الله اکبر خدا بزرگتره باید تو عمل هم چگونه عمل کنم اگر به من میگن صد میلیون که هیچی صد میلیارد تومان الان مطرحه ولی خدا نمیپسنده الله اکبر یا این صد میلیارد اکبر اگه صد میلیارد رو بر امر خدا ترجیح دادم گرچه هر صبح تا شب میگم الله اکبر ولی دارم دروغ میگم من ذکر لسانی دارم ولی تو مرحله عمل ندارم حالا لعنم یه مرحلش ذکر لسانیه ما موظفیم بگیم لعنه بر شیطان ما موظفیم بگیم اللهم لعن اول الظالم من ظلم حق و محمد صلی الله علیه و آله و الله <سؤال> <سؤال> محمد, <بار> محمد <بباشر> <سؤال> <سؤال> آیه قرآن بود دیگه قرآن گفت کسانی که پیغمبر رو می آزارن اینا لعنت میشن کسانی که کتمان ما انزل الله میکنن اولائک الله و الله اونون خب یه مرحله من خب من تصویر میگیرم میگم اللهم الئن اول من. الآخر لعنت خدا بر شیطان لعنت خدا بر دشمنان دین و خدا لعنت خدا بر اونهایی که حق رو زیر پا گذاشتن حالا فارسی شده رو میگم این عربی شما میگید من این ذکر رو میگم این ذکر لسانیه ولی اگه ذکر عملی من این نباشه این نکته مهمه تقاضا دارم دقت کنید چه ارز میکنم پس اصل لعن چه آیه قرآن هست؟ بله ما چون انسانیم اعمال ما یه جنبه بدنی دارد یه جنبه روحی همونطوری که در نماز من رکوع میرم جنبه بدنی قیام دارم جنبه بدنی سجده دارم جنبه بدنی ولی نیتی که در این رکوع دارم نیتی که در این سجده دارم نیتی که در این قیام دارم توجه روحی که به اذکار نماز دارم اگر اینها مگه امام صادق نفرمود به هر اندازه قبلن بحثشو کردی مخصوصا چارشنبه هر اندازه ای که تواضع بدنی شما از روح روحی شما نسبت به زم... نماز بیشتر باشه همون مقدار منافقید امام صادق فرموده یعنی من الان از بدنی از نظر خیلی هم چی مرتب منظم گردن کج قنوط و یه حالی هم دارم میگیرم اما در جان و روح هم این نیست من منافقم این امام صادق فرمودند خب حالا اگر من تو زل زبانم میگم الله اکبر ولی تو عمل به اندازه این زبان الله اکبر من ندارم من منافقم اگر ما در مرحله لعن طبق اون آیه میتونم با تسبیب دستم بگیرم بگم لعنت بر شیطان لعنت بر دشمنان خدا لعنت بر عذیت کنندگان اولیای دین ولی در عمل خودم عذیت میکنم اولیای دین رو من مستاغون آیم لمه تقولونم آلا تفعلون این جزش میشه یا نه؟ پس یک اگر لعن هست که هست که طبق آیه ارز کردم اما بر اساسی چی؟ بر اساس نه فقط لسانی لسانیش که کاری نداره آقا من یکی از گرفتاری هام اینه حالا من که بچم واقعا بچم بزرگان مشکلاتشون اینه هی hey, مراجعه میکنن یه ذکر به ما بگید بگیم به فلان چیز برسیم خب این که کاری نداره یه تصبیر برمیدارم آقا حالا برای اینکه مثلا میگه هزار تا بشه این صد تا سخته ده تا تصبیر میگیرم توی یه نخ دازم که دیگه نخوام هی شماره ده تا تصبیرم نگه دارم راحت طلبی دیگه خیلی مسلمانای های راحت الحلقومی خیلی راحت هم میشه دیشونه بجایه کاری ندارم با حولا پس پس کردن این که کاری نداره لا انا شو به خصوص که یه مقداری با یک بزن و برخی یا یه مقدار با کف زدن یا یه مقداری هم با ورجورجه‌ای که سازگار بعضی روحیا باشه این که کاری نداره اما لعن واقعا اینه واقعا اینه نمیگم لعن ظاهری نیست لعن لسانی نیست همینطوری که تصفیه از زهرا واقعا اینه الله اکبر الله اکبر فقط اینه اگر این باشه اون روایاتی که از اصول کافی من خدمتتون خوندم قبلن بحثشو کردیم حالا دارم اشاره میکنم تو کافی بود حضرت فرمود میدونید ذکر یعنی چی؟ یعنی در هر کاری در هر عملی اینان تو اصول کافیه در هر کاری در هر عملی وقتی میخوای عمل کنی اون چه خدا میخواد توی کفه ترازو بگذار اون چه غیر خود و نفس خودت میخواد در یک کفه ترازو اگر همه این کفه با اون مخالفه همه رو بذار کنار اون یکی رو بگیر تو اهل ذکری این اینن روایت اصول کافی قبلا خوندم بحثشو کردم دیگه تکرار نمی کنم همونطوری که اهل ذکر بودن مشخصاتی داره اهل لعن بودن هم مشخصاتی داره لذا اگر ذکر لعن با فعل لعن همراه نباشه میشه چی؟ میشه لمت ما مالا تفعلون خب ذکر لعن برای خدا مطرح نیست ولی فعل لعن برای خدا مطرح دیگه فعل لعن خدا چیه؟ ترد از روی غضب در دنیا از انایتش در آخرت هم نزول عذاب حالا ذکر لعن برای من و شما همونیست که باید به زبان بیاریم اما فعل لعن چیه؟ اگر کسی خدا و پیغمبر رو آزرده اگر کسی اولیای دین رو مسخره کرده اگر کسی حکم الهی ما انزل الله رو زیر پا گذاشته من از او متنفرم چرا متنفرم؟ حساب شخصی دارم اینم خوب دقت کنید آقا جون ما برادرم و خواهرم. احکام الهی انجام وظائف دینی برای تشفی خاطر نیست برای اجرای حکم خداست خیلی نکته ها زریف ها به خدا قسم قصه میخورم به خدا قسم گاهی تو خلوت تنهایی گریه میکنم که چرا ما مسلمان به این ریزکاری های زیبا و قشنگی که در مکتب ما برای ما قرار داده ان بی توجه شده ایم آقا اگر تشفیق چرا اسلام میگه ریزکاری ها رو دقت کنید چقدر قشنگه شما احتمال ضرر میدید که روزه براتون ضرر داشته باشه احتمال زرر از فقهی تکلیفتون چیه باد بخورید روزه رو احت... نه یقین ضرر احتمال عقلایی البته گویا بنده خدای قبل ماه مبارک رمضان رفت پیش پزشک آقا ما رو شما چکابی بکنید من میتونم روزه بگیرم یا نه پزشک گفتون الحمدلله سودوم رو گندوی هیچ مشکلی هم نداری چرا نمیتونی بگیری دیگه پیشت نمیام من این همه پیش تو اومدم رفتم پول ویزیت دادم که دم ماه رمزونی کاری برای ما بکنیم اصلا آقا حالا یه احتمال اغلایی میدیم که روزه گرفتن برامون مزره آقا حق نداری من دلم نمیاد دل چه کار حکم همینه دل چه کار شما تسلیم امر الهی بوشی لذا اگر بگی دلم نمیاد روزه رو میگیرم گناه کردی قضاشم باید بگیری تازه قضای این روز رو باید بگیری گناه هم کردی معصیت هم کردی چرا؟ چون دل تو حاکم کردی حالا اگر آقا من دلم میخواد تصفیه بردارم مثلا فوش بدم این حکم خدا نیست اما حکم خدا اینه متنفر باش از بدا باید متنفر باشن طبق آیه شریفه کسانی که حقیقت الهی رو کتمان میکنن ما باید از اونا بدمون بیاد باید تبری داشته باشیم. یک مرحله بد آمدن ذکر لسانی است تسبیح وردار اب نداره البته اونم آدابی داره رو ارز میکنم اما اگر ذکر لسانی شما با, ذ... با ذکر عملی شما یعنی لسان شما با فعل شما، لعن, شما لعن فعلی شما لعن فعلی شما چیه؟ ترد از رحمت ترد از رحمت در حد من و شما چقدر میشه؟ آقا ما همراهی با ظالم نب... آب تو آسیاب ظالم نباد بریزیم. هیزون برای جوش آمدن آب که ظالم نمیتونیم بشیم. امام کاظم علیه السلام صفان جمال جمال یعنی شطوردار جمل زیاد داشت. شرکت مسافربری اون زمان بغداد بود چون وسیله های حمل و نقل شطور بود دیگه جمال بود شطور زیاد داشت. حارون شتورهای صفان جمال رو اجاره کرد بیاد مکه عمل حج انجام بده صفانم اجاره داد صفان از شیعیان امام کاظم شتورها رو اجاره داد اومدن مکه عمل حج انجام دادن برگشتن مدینه صفان یواشگیرف خدمت امام کازم قبل از زندانی شدن امام کازم بود که امامشو ببینه امام فرمود صفان کجا بودی حضرت میدونسه آقا شتورها رو اجاره دادم به حارون که چرا به هارون اجاره دادی ارز کرد آقا جون سفر حج بود گف سفر حج باشه آیا دقت کنید آی همه نوشتن بلا استثنا آیا در دلت راضی هستی هارون بین راه نمیره که کرایه تو از بین بره تا بغداد سالم بیاد که پولایی رو بت بد بده گفت چرا آقا این تو دلم هست فرمود همین مقدار که تو دلت جوزی به باقی بقای ظالم هستی همین مقدار شریک ظلم ظالمی حالا تسبیح بردار بگو اللهم الئن هارون اللهم الئن هارون اللهم الئن اما تو ته دلت که اللهم الئن هارون نیست تعهدلدی نه که خدای هارون زنده بمونه تا اونجا بیاد پول ما رو بده در واقع درود بر پولم احسن بر پولم اصل پولم در واقعینه دیگه ولی زبان میگم اللهم الئن صفان چه کرد؟ اونام عاملا آقا. صفانم چیکار کرد؟ اونام آقا شیعه یعنی این. یعنی اگر لسانن در محضر امام عرض میکنه بله بله من از هارون بیزارم چا دید نظر امام اینه اومد همه شطراش و, و یه جا مدینه فروخت. یعنی این شرکت رو برگزار کرد به یه شرکت دیگه هارون اومد سافان خواست چی شد گفت پیرم دیگه توان ندارم تصمیم دارم دیگه بازنشست کنم خودم. گفت میدونم از کجا آب می‌خوره یعنی اونم میفهمید. حالا اگر من تسبیح بردارم بگم لعنه بر دشمنان امیرالمؤمنین ولی آب تو آسیای دشمنان امیرالمؤمنین بریزم یا نه خودم کاری کنم که دل امیرالمؤمنین رو بشکنم امیرالمؤمنین از من چی میخواد؟ امام زمان از من چی میخواد؟ شاد کردن دل امام زمان به چه صورته؟ پس یک اصل لعن به معنی ترد و بیزاری لسانیش این مرحله است که ما بیان میکنیم اما عملیش اونه حالا یه نکته بسیار مهم در اینجا که تقاضا دارم دقت کنید چی ارز میکنم؟ ببینید هر تکلیفی را که خداوند برای ما بندگانش معین کرده شرایط و ضوابط گذاشته یا نذاشته مثلا میگه روزه واجب است تکلیفه به شرطی که از نظر جسمی توان داشته باشی حالا اگر کسی نظر جسمی توان نداره روزه بگیره پس به وظیفه عمل نکرده اگر مسافری با آداب خاص خودش نه روزه نباید بگیری آقا خوردن گوشت میته بر شما حرام است ولی اگر در چنین شرایطی قرار گرفتید گوشت میته رو میتوانید بخورید هر تکلیفی شرایطی داره ما یا باید مجتهد بشیم به فتوای خودمون عمل کنیم این ارزش عالی در فرهنگ شیعه که مختص شیعه است امام صادق علیه السلام فرمودند اگر در دوران غیبت امام عصر علیه السلام کسانی که خودشون مجتهد شدند تقلید بر اونها حرامه. عجیب نکته ایسا. چون خودش مجتهده. به فتوای خودش میتونه عمل کنه. او ممکنه مرجع تقلید دیگران نباشه. برای دیگران حق فتوا دادن نداره. ولی برای خودش میتونه عمل کنه چون مجتهد شده. حالا اگر مجتهدیم، ضوابط اجتهاد اینجا بحث کنیم، اشاره میکنم. اگر مجتهد نیستیم، باید مجتهدی را که انتخاب کرده ایم تابع او باشیم. فتوای او رو در نظر بگیریم در بحث اجتهاد، در تکلیف همه فوقه ها این بحث اجتهادی رو مطرح کردن که شما هر تکلیفی رو باید شرایطی رو در نظر بگیرید مثلا اگر بنده موظف هم وضوع را به شکلی که بحثش اینجا مفصل کردیم که یادتونه دو سال قبل که وضو رو باید به این شک بگیریم اینم به عنوان یک مقاله تو یکی از مجلات چاپ شد همین بحثی که اینجا داشتیم با هم که چرا شیعه میگه اینجوری وضو بگیری سنی میگه اینجوری بحث مفصل کردیم به این دلیل به این دلیل وضو اینجوری درسته خب حالا چرا امام کاظم علیه السلام به علی ابن یقطین نامه داد تو از امروز تا چند روز اینجوری وضو بگیر یعنی شرایط چی شد تقیه بود چون می‌خواستن علی رو به عنوان شیعه بگیرن بکشن امام دستور داد به علی ابن یختین تقیه کن تا جان تو حفظ بشه اگر یه حکمی در شرایعی قرار گرفت که جان خودم یا جان ای را ممکن است به خطر بیاندازد من در انجام اون حکم تکلیف فقهیش چیه بگم ولو کشته میشم این کارو بکنم کشته شدن در یه شرایطی اب نداره شهادت ولی در شرایطی که اگه شرایط شهادت نباشه من یه فعلی رو انجام بدم خودم رو بکشتن بدم نه تنها اجر شهید رو نمیبرم بلکه چی میشه تو خود خودکشی داره حالا اگر اصل لعن که قطعا درسته لعن عملی عمل ماست که آب باسیاب و دشمن نریزیم ولی لعن لسانی اگر آشکار شد جان خودمون یا جان ادهی از شیعیان امیر در مناطقی به خطر افتاد تکلیف چی میشه آشکارا رو میگم حالا اگر بنده تنها تو اتاقم هر روز هر شب ذکر لسانی لعنو داشته باشم ذکر لسانی لعنو هیچ هم با خبر نمیشه یا یک جلساتی داشته باشم که امکان درز پیدا کردن پیدا نکنه جان شیعیان در گوشه و کنار عالم به خطر نیفته خب این شرایط فقهی فراهمه ولی اگر من بیام مثلا برای تشفی خاطر خودم یا بنا به یه جهاتی این حالت رو ولو من اینجا در خطر نیستم اما این کار من باعث بشه یه عده شیعه ها در یه جای دیگر عالم به خطر بیافتند از نظر فقهی تکلیف چی میشه هر حکمی موضوعی دارد موضوع شرایطی داره تشخیص موضوع با مجتهد نیست تشخیص موضوع با خود افراده رابطه موضوع با حکم در رابطه محمول کار مجتهده و وقت بخ... ما ایم که باید این شرایط رو بررسی کنیم احساسات اینباد برخورد کنیم پس اصل بحث لعن یا بحث واقعی قرآنیه ساده ترین شکل لعن هم لعن لسانیه ساده ترینش عالی ترین شکل لعنه فعلیه لعنه عملیه خب این یه مرحله اما یه کمی بریم جلوتر حالا ما وقتی مکلفیم به تکالیفی باید ببینیم تکالیف رو بر مبنای اونچه که خدا معین میکنه انجام میدیم یا بر مبنای اونگونه که دلمون میخواد انجام میدیم گفتن که یک کاروان مسافری داشت جایی میرفت این کاروانایی که مسافرت می‌کردن گاهی دزد سر گردنه می‌اومدن می‌گرفتن و اموالشون می کارو... رو غارت می‌کردن یک کاروان دزدی اومدن یک قافله دزدی یک کاروان رزت اموالشون رو گرفت مرداشون رو دستشون و بس به زناشون گفت که ما میزنیم شما باید برای ما برخسید خب مردا بیچاره‌ها دست‌ها بسته و انگوشو افتادن زنا اینا زن و زنام یه رقصی کردن و اینا بعد آزاد کردن رفتن یکی از این مردها به زنش اعتراض کرد گفت چی رقصیدی گفت دیدی که نه سرنویز داشتن و شمشیر داشتن؟ گفت نه خوش رخصی می کردی خوش رخصی با رقص مجبوری معلومه کسی که مجبور به رقصه خب نشون میده ایاله اما تو اصلا که بدیت نمیومد که دلتنگاست یه حالا بعضی آقا علا خوش رخسین من احکام الهی رو میخوان بهانه قرار بدن این غلطه از ایزان من خدا یا تو شاهدیم من دارم وظیفه دینی رو میگم. بیاییم دقت کنیم حکم خدا را باید تو محدوده دستورات خدایی ما انجام بدیم حالا لند بله دستور الهی من رو براتون خوندم اما سب یعنی فحش دادن ببینیم راجب سب قرآن چی میگه راجب سب سیره معصومین علیهم السلام چی میگه من یک آیه از قرآن بخونم یه تیکه از نهج البلاغه اشاره کنم بعد وضع شیعه باید همونجوری که امام صادق فرمودن کون لنا زینا ولا تکونو علینا شینا زینت ما باشید بگن شیعهای ما آدمای مبقر آدمای با شخصیت آدمای با فکر آدمای با منطق هر حرفی میزنند میزنن دلیل اگر بنده تسبیح گرفتم گفتم یا زیارت آشورا خوندم گفتم اللهم الان اول ظالم من ظلم حقه اسم پیغمبر رو ببرم و آلش به ما میگه چرا لعن میکنی؟ فولی ده تو آیه بخونه. آیا قرآن گفته؟ مگه قرآن نگفته؟ اونهایی که ان زینه یک تومون ما انزل نمینال بیینات و خدا آنهايي که این کارو میکنن اولاي که یل هم الله و یل انها هم الله و اینون خود خدا بنیامه یارو لعن کردو تو قرآن کجا؟ مگه تو سوره اسرائیل شست. نمیگه که و ما جعل نرویالتي اريناخ الا فتنة للناس و شجرة ملونه في القرآن شجره ملعونه در قرآن بحثش رو قبلا کردیم میگه بنی اومیه نیست خدا اهل سنت هم که قبول دارن چرا بنی اومگر رو قرآن میگه شجره ملعونه؟ بذارید کنار این آیه چون در این آیه میگه انلهزینه یک توونه ما انزل نامبیه ناطولهدا. اینا میگه, میگه اوایی که الله و یاعنا پس بنی اومیه چون کتمان ما انزلله انزل الله کردن ملعونن پس ما میگیم که الله مل بنی اومهواها کهذا قرآن میگه هرکس پیغمبر و آل پیغمبر رو بیازاره اون ملعونه خب کسانی که پیغمبر رو آزردن اهل بیت رو آزردن حضرت زهرا رو آزردن امام حسین رو آزردن پس ملعونن بله دلیل داریم حرف داریم ما طبق آیات و قرآن بحث می‌کنیم ولی بله شرایطش رو باید در نظر بگیریم لعن لسانی رو با لعن عملی و اینا همه جای خودش اما حالا راجع مثلا سب. سب سوره مبارکه هی. انعام ام آیه 108 سوره مبارکه انعام آیه 108 ولا تسرب الذين يدعون من الله سب نکنید کسانی را که غیر خدا را میخوانند یعنی بتپرستن یعنی بد این آدم‌های مردودند ولا تسرب الذين يدعون من الله چرا ادامهش می فرماد خونه هم برگردن به خدای شما پوش بدن اونا هم برگردن به اعتقادات شما حرف زشت بزنن در جنگ سفین در مقابل ولی یه حق امیر معاویه است جرسومه فساد معاویه ای که خون به دل امیر المؤمنین خودش و خلیفه جا میزنه امیر رو خانه نشین میکنه امام مجتبا رو خانه میکنه این همه جنایات میکنه خطبه دویست دقت بفرمایید اول خطبه عزیزان من ما امیر المؤمنین رو قبول داریم ما علی هستیم دقت کنید خطبه دویست و شش وقد سمع غومن من اصحابه یسوبونه اهل شام ایام هر به به سفین این تیتریست که روی این خطبه اومده امیر در موقع جنگ سفین دید یه اده از اصحابش نقلم کردن کیا بودن از بزرگانم هم هستن اینا داشتن سپاه معاویه رو سب می کردن. عزیزانم سب با لعن فرق داره. لعنو گفتم اول از آیا آوردم نه ما لعن دستور قرآنیه منتها دارم میگم لعن لسانی با لعنه فعلی باید هماهنگ باشه ثانیا چه لعنه لسانی چه لعنه فعلی به عنوان تکلیف است تکلیف شرایط باید لحاظ بشه رعایت بشه وگرنه روز تکلیف شما شرایط روزه رو رعایت نکنید شرایط خوردن بگیرید حرام است نماز شرایطش شکسته شده بود دو رکعت بخونی چهار رکت و چهار رکت بخونی حرام گفت در سفر چهار رکتی رو چهار رکت میخون بهش گفتن آقا دو رکعت هرچی بیشتر بهتر گفت خدا گفته گفت من که پای عبادت به میون بیاد این خدا سرم نمیشه که این حرفو. حالا منی که دلم میخواد اینجا این کارو بکنم خب اون دیگه من است وقت من اون میشه که عرض کردم حالا اینجا سب با لند دو تاست راجب لند من چند تا آیه خوندم آیات بسیار دیگری داریم که اگر یه وقتی وارد این بحث بشم آیات رو بیشتر انشالله بحث خواهم کرد تحلیل عقلیشم خواهم گفتند فعلا با اشاره میگذرم اما راجب سب سوره انعام اون آیه فرمود ولاتسو بللزینم شما این کارو نکنید نسبت به کسانی که حتی خلاف دین شما اول میکنند بدپرستند باطلن چون باعث میشه که به مقدسات شما توهین کنن حرف زشت بزنن تو جنگ سفین قد سمع غومن من اصحابه یسوبون احل شام ایام هر به هم به سفین ایامی که حضرت در جنگ سفین داشتن می یه اده از اصحاب آقا داشتن به اون لشکریان معاویه سب می کردن. خب لشکریان معاویه خبیس بودن بله مقابل امام زمانشون ایستادن بله باطلن بله اذیت ولی الله کردن بله همه درسته ولی امیرالمومنین چی فرمیدن انی اکره لکم ام تکونوا سبابین من اکراه دارم من خوشم نمیاد فداد بشم علی چقدر بزرگی چقدر بزرگی من نمیپسندم من دوست ندارم من نمیخوام که شماها فشدهنده دهنده باشید رکی که از دهنتون در بیاد نمیخوام اینجوری باشید ولکن نکم لو وصفتم اعمالهم اما اگه میخواهید مثلا اینا رو توصیف کنید حرفاشونو بزنید بیاید اینجوری با اینا حرف بزنید که بعد ادامش میفرمان به اینا بگید شما باطلید چرا این کارو میکنید حق چیه مثلا خدا شما رو اصلاح کنه خدا یه کاری کنید بقیه ان خواستید خودتون تو خطبه ببینید من فقط این تیکه رو میخواستم بگم انی اکره لکم ان تکونو سبابین من علی خطبه 26 نهج بلاغه مخاطب کیه مخاطب سپاه معاویه است عرض کردم نه اینکه لعنه لعن جای خودشه بله منطقه تأکیدم میکنم لعنه لسانی ساده ترین شکل لعنه لعنه عملی مطره آقا الان مثلا به عنوان مثال بگم آقا مثلا بعضی میان خیلی هم این در و اون در میزنن من حتی گاهی متأثرم که اینو در سطح مثلا حالا یک رسانه های عمومی هم مطرح میکنن مثلا فرض کنید شمر یا یزید یا عمر یا ابن زیاد یا, یا اینا مثلا فرض کنید که فلان کاره بودن فلان کاره بودن فلان کاره بودن من میگم اصلا احتیاج نیست ما وارد ای حرفا بشیم همینقدر که بگیم با ولی خدا در افتاده این بدترینه دلائل قوی هم داریم چرا همینا شایدم دارن اونا رو مطرح میکنن که اینا رو نگیم ما رو سرگرم اون حرفا بکنن آقا ما اگر با ادله قوی میتونیم بگیم آقا مغزوب فاطمه زهرا مغزوب خداست اینو دلیل داریم یا نداریم طبق حدیث ان الله یغظب و غضب فاطمه و یرضى رضا پس مغزوب فاطمه مغزوب خداست اگر ما بریم تو صحیح بخاری بگردیم تو کتب دست اول غیر شیعه در بیاریم که فاطمه یا سلام الله علیها به خلفا غضب کرده اونا مغظوب فاطمه این برای کوبیدن کافی است یا بیایم بگیم مثلا پدر بزرگش مادر بزرگش زنازاده بوده که بوده من حرفی ندارم ولی حالا اون کسامل قبل از اسلام هم بوده چرا اینا رو نمیایید بحث کنید چرا این مسائل غوی علمی رو مطرح کنید تو دنیا بتونیم سر بالا بگیریم حرف بزنیم. بگیم بابا طبق این دلائل اینا با اولیای الهی در افتادن. این که مهمتره که یا وقتی طبق نس سریح قرآن کسی در مقابل پیغمبر بیست من بگه مثل شیطان است که در مقابل خدا راجب حضرت آدم ایستاد این قرآن میگه یا نمیگه که مفصل بحث کردیم خب کسی که پیغمبر میگه لعن الله من تخلفن جیش اسامه بیا اینو بحث کن مدارکشو در بیار قوی نشون بده میتونن در مقابل شما حرف بزنن یا اینکه بگن دیدید؟ دقا اینا هی فوش میدن شیه قوی باش شیه زرنگ باش شیع اهل تفکر باش شیه با پشتوانه قرآنی و علمی حرف بزن بزا تبلید با اوج علم تبریتم با اوج علم باشه که در جای خودش خب آیه دیگری در قرآن داریم ممکنه به ما بگن خب آقا این آیه شریفه سوره مبارکه نساء آیه 148 لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا حالا الاشو بعد میگم ادامش لا يحب الله خدا دوست نداره همانطوری که اونجا امیرالمومنین من دوست ندارم شما سباب باشید اما نه اینکه شما لائنون نباشید اونیکه طبق آیه قرآن باید باشید من دوست ندارم شما سباب باشید در آیه 148 سوره مبارکه نساء میفرماید لا يحب الله خدا دوست نداره خدا دوست نداره یعنی چی نمیخواد شما بندگان اینجوری باشید الجهره بسوء من القول در سخن گفتن در قول در حرف حرفای سو بد و زشت بلند از دهان شما در بیاد. ولی یواشکی گوشه نشستی مثلا یه حرفی نسبت به بعضی بدا میزنید اما بلند نه. لا يحب الله الجهر سوء من القول الا مگر من ظلم مگر کسی که مظلوم باقی شده. و این خیلی عجیبه من به تفاصیل مراجعه کردم روایات در زیل اینم دیدم حتی روایاتی که از معصومین علیه مسلام وارد شده ارز کردم اگه بخوایم اینها رو بحث کنیم باید لاغل یه پنجه ها جلسه راجبه این موضوع ما بتونیم وقت داشته باشیم بحث کنیم من دارم سریع رد میشم مفصل تو بحث تفسیری اومده میگه مثلا فرض کنید آقا بنده با شما شریک شدم سر شما رو کلا گذاشتم من به شما ظلم کردم. شما بلند به بقیه میگید آقا این آقا سر من و کلا گذاشته پول منو خورده. این اب نداره. یعنی در اون حدی که من به شما ظلم کردم. همون را الا من ظلم. ولی غیر از اون اگه بخوای بلند بگی طبق این آیه عمل نکردی. خلاف عمل کردی. حتی اینو تو روایات ما توضیح داده. شما آشکارا و بلند بگید چه ظلمهایی به احل بیت کردن. بگید. ولی حرف زشت به زبان نیارید. حرف رکیک به زبان نیادید. شخصیت شیعه پایی نیاد. جمبنده بحث در حد این چند آیهی که خوندم بعد یه نتیجه بگیرم. پس چی شد؟ آقا به ما اشکال چون بحث رو به زیارت بود من به اینجا رسیدم. به ما اشکال میکنن که شما وقتی که زیارت آشورا رو عنوان یک زیارت معصوره مطرح میکنی یا زیارتی که از معصومین وارد شده تو این زیارت آشورا چقدر لعن به کار رفته؟ بله خیلی لعن به کار رفته اصلا یه مؤمن باید لعن کنه یه حرفای چی شما میزنید؟ جواب بله قرآن گفته لعن هست آیو خوندم برات هم خدا لعن میکند کسانی را که دو موردشو در قرآن اشاره کردم نه مورد رو قرآن اسم مرده. نه مورد رو قرآن اسم برده من دو موردش رو اشاره کردم حالا اگه بحث مفصل کنیم فاسقین رو گفته ظالمین رو گفته کفار رو گفته و بحثایی داره این دو مورد رو یه مورد میگه کسانی که خدا و رسول را عذیت کنن خدا اونها رو لعن میکنه یه موردم هم فرموده کسانی که ما انزل الله را کتمان کنن آقا یا هر رسول بلغ ما, ما انزل الیک من ربک ما الله هست یا نه بلغ ما انزل اگر پیغمبر فرمود من کنتو مولا فهذا علی مولا ها اونایی که کتمان این حقیقت کردن طبق این آیه ملعونن پس لعن میشه کرد منتها این توجه رو داشته باشیم لعن خدا لعن فعلی است با توضیحاتی که دادم لعن ما لعنه لسانی و فعلیه اگر لعنه ما لسانی باشد فعلی نباشد مثل ذکر عرفانی ما که لسانی باشه فعلی نباشه لما تقولون مالا تفعلون شامل حال ما میشه دارم ذکر میگم ولی معصیت میکنم توضیح دادم شرایط شد پس بهتر این ذکر رو نگم که معصیت نکنم اگر من میخوام ذکر هر لعن رو داشته باشم، باید فعل لعنم داشته باشم. کسی که پیغمبر رو میآزاره، خودش ملعونه. من ذکر لعن بگیرم، ولی نماز نخونم، روزه نگیرم، وظیفه‌مو انجام ندم، هجابم رو درست نکنم، غیبت کنم، تهمت بزنم، مردم آزاری بکنم، دل اولیای الهی رو به درد بیارم، خب من که رو دارم، فعلشو که ندارم که. پس ذکر و فعل من باید با هم باشه. اما صبر را آیه شریفه چی میفرماید؟ میگه صبر نداشته باشید. امیرالمؤمنینم المؤمنینم فرمود من دوست ندارم شما سبب باشید اونجایی که جهر قول به را مجاز می داند قرآن می الا من ظلم الا من ظلمم بله ما ظلمی که به اهل بیت شده بیایم بیان, بیان کنید باید لذا بنده دارم چند سال تو این حسینیه به اندازه ای که توان من اجازه داده و مغ... که قدرت پیدا کردم خدا توفیق داد بنویسم نوشتم که آقا چقدر حق خوشی نسبت به مظلومین شده بنده بعضی وقتا جوش میارم داد میزنم فریاد میزنم بعضی دوستانی که پزشکن تو جلسه میگن آقا ما هرس می ما رو اذیت میکنی چرا چرا داد میزنی میگم به خدا دست خودم نیست بارها نگفتم اگه بنده اینجا نشسته باشم کسی از این پشت هی hey, چاقو به من بزنه من فریاد بزنم شما به من اعتراض میکنی چرا فریاد میزنیم آقا داره میزنه منو من وقتی تو تاریخ میبینم چه به شده چرا داد نزنم چه حق خوشی راجبه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا شده چه حق خوشی راجبه اطرات پیغمبر شده اینا رو بله در جای خودش باید توجه داشته باشیم لذا اگر فرمودن شیعان ما کسانی هستند يفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا کاملا درسته بحثی هم درش نیست شیعه به شادی اهل بیت شاده به غم اهل بیت هم غمگینه اما هم شادیش آداب داره هم غمش آداب داره مثلا تو غمش بنده ای که منو کنترل میکنن همیشه روزه نخونم شب ولادت روزه نخونم وگرنه شب ولادتم دلم نمیاد میخوام روزه بخونم اما در این حال چقدر ناله میزنم آقا واقعا این شیعه شیوه ازاداری ما باید این باشه چهار ساعت سینه بزنیم نیم ساعت بحث گوش نکنیم فکر نمی کنی دشمنا دارن جهت میدن؟ چهار ساعت حاضرم شب آشورا سینه بزنم سینه زدن امام حسین بالا سر من اشتباه نشه بالای سر من ما سینه بزنیم ما بزنیم شما که دیگه میدونید بنده که دیگه متهمم زیاد مردم رو می گریونم ارزه خندندن خیلی ندارم من متهمم مردم رو می گریونم. لذا بعضی وقتا من تلفن میکنن آقا دیگه نمیشه امشب روزه نخونی مثلا یک کمی هم ما بخندیم میگم اگه تونستم چشم کتاب راجع به گریه نوشتم من که مخالف گریه نیستم اما آیا واقعا شب آشورا من چار ساعت سینه بزنم نیم ساعت بحث گوش نکنم اگر یه نفر به من بگه چرا برای امام حسین سینه میزنی سی سال سینه زدم نتونم جوابشو بدم این دل امام حسین نمیشکنه, دل امام زمان نمیشکنه. اگه یکی به من بگه چرا میگی تو زیارت و آشورا خب بعضیال الحمدلله این توفیق داشته باشید آلیستا هر روز زیارت عاشورا می‌خونن خوشا بال اونایی که این توفیقو دارن هر روز زیارت عاشورا می‌خونن حالا اگه کسی به من بگه چند سال زیارت عاشورا می‌خونیم مثلا فرض کنید بگم تا یادمه زیارت عاشورا می‌خونم بگه خب چرا لعن میکنی؟ بگم چه میدونم؟ این دل ما حسین به درد نمیاد. ولی حالا اگه بخوای بگی لعن مثلا فرض کنی که چار زرب و ده زرب و بیست زرب بله خیلی هم قشنگ حمادگیشو دارم جواب بده توضیح بده کار کنیم رو اینا دشمن ما را در یک جهت باطل سوق نده جمبندی چی شد؟ لعن ریشه قرآنی دارد عقلیش بحث نکردم ریشه عقلی مفصلی هم داره لعن ریشه قرآنی داره لعن لسانیش یه مرحله است فعلیش یه مرحله است شرایط و آدابی داره ما در زیارت ها شورا اونقدر بحث لعن مهمه که اول لعن است بد سلام در اون ذکر صد بارش، اول لعن بد سلام شما اصلا در بینش قرآنی اول کفر به تاغوت بد ایمان به الله و من یک فر به تاغوت و یومن به الله. اول نفی باطل است بد اثبات حق لا اله ها. بعد الا الله همینا قبوله در جای خودش ولی با آداب و شرائطش خب اما یه سوالی همینجا الان به دستم رسید اجازه بدید اینم عرض بکنم ارتباط بین لعن و نفرت چیست اصلا ببینید نفرت به نظر من لعن عملیه یه مرحله از لعن عملی خوب دقت کنید سوال قشنگیه یک مرحله از لعن عملی نفرت یه شاهد بیارم از آقا امیرالمؤمنین علیه السلام در وسائل شیع جلده یازده باب امر معروف و نهی از منکر مولا فرمودن من ترکم انکار المنکر به قلبی، و لسانی، و یده فهو و بین الاحیا کسی که نهی از منکر را با قلبش یا زبانش یا دستش ترک کند او مرده است در میان زنده ها یعنی کمترین حالت نهی از منکر چیه؟ قلبی قلبن آدم خوشش نیاد حالا اگه میتونه حرف بزنه باید حرف بزنه اگرم میتونه با قدرت جلوی بدی رو بگیره باید با قدرت ید اینجا معنی قدرته با قدرت جلو بدی رو بگیره کمترین دلجه لعن عملی نفرت انسان اسان بدش میاد، تنفر داره بدم میاد از کسانی که حق امیر رو کردن طبیعیه بدم میاد از کسانی که دل عزت زهرا را شکستن متنفرم از کسانی که کربلا این جنایت رو کردن بیزارم از کسانی که به حضرت زینب سلام الله علیه ها جسارت نمودن بیزارم از کسانی که امام صادق رو خانه نشین کردن طبیعیه اگه انسان فکر داشته باشه که نمیتونه متنفر نباشه. پس لعن عملی کمترین درجهش میشه چی؟ میشه تنفر آیا میتوان گفت که لن از نفرت ما نسبت به یک شخص گروه یا قوم نشأت میگیرد؟ فکر کنم رو عرض کردم ما وقتی از کسی یا گروهی بدمون میاد بدومدن یا حق است یا ناحق اگر بدومدن ناحقه نفرت ما نفرت ناحقه مثلا اینایی که فرض کنید که نمیدونم اولا بگم نگم چکار کنم بگم دیگه بادا باد مثلا فرض کنید اهل اعتیادن اهل مشروبات الکلی یه نفر به قول خودشون میگن این ضد حاله دیگه ها تو جمع ما پیدا شده امشب حال ما رو داره به هم میزنه ما بساط منقل و بافور و نمیدونم چی و از این مزخرفات رو تهیه دیده بودیم حال کنیم یه ضد حال امشب تو جمع ما پیدا شد هی میاد اون ای که اهل اون جور حالا نسبت به این فرد متنفرن یا نه اما این تنفر تنفر چیه تنفر غلطه پس تنفر میتونه غلط باشه کما اینکه لعنم میتونه غلط باشه یعنی لعن لسانی غلط باشه لعن فعلی هم غلط باشه که کمترین درجه لعن فعلی میشه تنفر اما حالا اگر یک جمعی مشغول مثلا فرض یه عبادت ارزندن مشغول یه خدمت ارزندن دارن حال میکنن از این که دارن خدمت به یه بنده خدایی میکنن. یکی زده حال این آسالا از اون بر. میاد میگه پیکارید این همه زحمت کشیدی پولتون و صرف کار. میگه بابا بدم میاد این هم موی دماغ ما شده. یه امشب یه توفیق پیدا کردیم. یه کار خیر بکنیم این هم نمیذاره. خب این تنفر تنفر رو خوبه دیگه. پس تنفر یعنی بد آمدن نسبت به یک امری که در دنیای تشخیصمون نمیپذیریم. اگر اگه تشخیص صحیح باشه او رو پذیرفته ایم اگر تشخیص صحیح نباشه ما یه چیز غلط رو پذیرفته ایم آیا صحبت‌های شما در تناقض با آیه 34 زوره مبارکه فصلت نیست؟ آیه 34 زوره فصلت رو بیارید؟ نه منظورشون کدوم آیه اگر اگه تناقضه توضیح بدم من فکر کنم منظورشون اینه أوجب الله من الشیطان الرجيم ولا تستقبل حسنا ولا سيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم نعزيز من اصلا این آیه رابطه بین بحث نداره این آیه بحث حالا که چون سوال کردید بگم ما اف داریم در در دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام بحثی آمده راجب مکرمت اخلاقی پیغمبر اسلام هم پرمودن اینی با اسطلع اتممه مکارم الاخلاق مکارم اخلاق رو عینا تو روایه توضیح دادن که اگر کسی با شما قطع رابطه کرد شما وصل کنید کسی به شما ظلم کرد شما عف کنید یعنی با وجودی که میتونید انتقام بگیرید انتقام نکنید مکرمت اخلاقی من بارها حقیقتش روی این موضوع فکر میکردم خیلی سالهای قبل که آیا این با اون تزی که مسیحی میگن اگر طرف راست از طرف چپم بگیر بزنن یکی نیست اسلام دین ادالته اسلام دین تحقق حقه اگر اصل بر این باشه که هر کی ظلم کرد شما بگذرید روحیه انتقام نداشته باشید نهی از منکر نداشته باشید در مقابل بدا نیستید سانکه رو سنگ بند نمیشه پس چیه که مکرمه اخلاقی اینجوری بیان شده این باید یه راز داشته باش. انقدر گشتم تا تو صحیفه سجادیه جوابش پیدا کردم دیدم در یکی از شمارش الان یادم نیست میتونم تو صحیفه حالا که الحمدلله با کامپیوتر راحت میتونید پیدا کنید امام سجاد علی... تو محاسن اخلاق مکارم اخلاق بزنید تو صحیفه میاد امام سجاد توی دعایی به خدا عرض میکنه چقدر دین ما دقیقه خدا یا یاریم کن در ای که ظرفیت مکرمت اخلاقی ندارن من در حد محاسن اخلاقی با اونها عمل کنم چقدر زیباز محاسن اخلاق چیه؟ همینی که قرآن میگه میگه اگه یه سیلی به صورت زرف شما حق قصاص دارید یه سیلی به صورتش بزنید اگر کسی رو کشت با شرائط خاصش شما با حکم حاکم شر حق دارید قصاص کنید طرف رو بکشید البته اگه اف کنید بهتره منتها اف کنید مکرمت اخلاقی امام سجاد میگه چی؟ میگه اگه ظرفیت نیست با این اف کردن سوء استفاده میکنن اطفه احسن مکرمت اخلاقیه این آیه اونو داره میگه پس بحث من در تناقض نیست بحث من اینه اون جایی که شما اگر اف کنید بهتر است باید اف کنید. ولی اگر اف کنید مثل قضیه چیه؟ آقا خدا فرمود امیر امام شماست امیرالمؤمنین فرمود شما نماز رو باید اینجوری بخونی تا اونی که خدا گفته انجام بشی حالا یکی اومد حق علی رو کنار زد خودش نشست نمازم غلط به ما یاد داد اطفا باللتیه احسن ایب نداره قبول کن اف کن این با دین خدا بازی کردنه این استاقشون نیست ببینید اطفا بلتیه احسن توی مسائل خاص شخصی میتونه باشه همسایه شما با شما فرض کنید حق خوشی کرد شما را کرد حالا شما قدرت داری پدرشو در بیاری نکن بگذر بذار شرمنده محبت شما بشه اما در جایی که همین پیغمبر خدا وقتی پیشانیشو میشکنن تو جنگ احد دست به آسمان بلند میکنه اللهم اغفر لقومی و انهم لا یعلمون خدای قوم من رو بیا اینا نمیدونن ها. اما همین پیغمبر وقتی وارد مکه شدن بعد از فتح مکه یکی از فرزند یکی از سران مکه چیزی رو دزدیده بود پیغمبر فرمود حد بزنید اومدن پیش پیغمبر واسطه شدن اینا زده میشن پیغمبر فرمود حق شخصی من نیست بگذرم این حق خداست خدا اجازه نمیده باید حد زده بشه یعنی هر چیزی جای خودش بعضی وقتا انسان افراط و تفرید بیچاره میکنه آدمو یه جاهای چنان زیاد روی میکنیم یه جایی کند روی. نه لن در جای خودش هست تنفر هست بیزاری هست شرایطش هم باید باشه سباب نباید باشیم جحر قول به سو هم الا در جای خودش مطرح شده خدایا تو را قسم میدیم به ارزش حقائق ارزشمند مکتب قرآن و اهل البیت به ما توفیق فهم درست و عمل بر اساس اون فهم انایت بفرما ببینید از من دیگه جنبندی کردم اونا مقدمه دعا میخوام وارد بشم دینداری احساسی دینداری شعاری دینداری تشفی خاطر دینداری دل من اینجوری میخواد دینداری دار و دسته ما اینجوری میپسندن اینا دینداری نیست اجمالاً بگم امام صادق علیه السلام چار نفر پای درسشون میامدن مینشستن ولی همه اونی بودن که امام صادق میخواست اگر این بود چرا اصول کافی داریم شخصی به امام صادق ارس کرد که یبنه رسول الله منصور دوانقی ظلم میکنه یک کاری بکنید حضرت فرمودون پردر رو بزنید کنار پردر رو زدن کنار یه تعداد کبوتر داشتن دون برمیچیدن فرمود به خدا قسم به تعداد این کبوترهای یاور ندارم شموردن هیبده تا بیشتر نبود چیه غزیه؟ دینداری دینداری احساسی نه دینداری تکلیف الهی. اون چه خدا گفته عمل کنیم که من بارها اینو گفتم به زردینم عرض بکنم مالک اشتر مالک اشتر مالک اشتر مو بر بدن آدم سیخ میشه اسم مالک اشتر رو ببریم که چی بوده این من من نمیفهمم مالک چی بود فقط از این حرف میفهمم که وقتی خبر شهادت مالک رو برای امیر المؤمنی نمیخوام نمخواهم شب شما رو به وقتی خبر شهادت مالک اشتر رو برای امیر انقدر آقا گریه کردن حالشون منقلب شد وقتی این جمله رو فرمودن خدای مالک را رحمت کند او برای من اونگونه بود که من برای پیغمبر بودم یعنی چی یعنی چی حالا این مالک چی بود احساسات یا تکلیف مالک جنگجوه عزیزان کسانی که قدرت بدنی و جنگجویی و نبرده با دشمن دارن میدونن برای آدمای قوی غیرت متره بعد یک پارچه عشق به علی است مالک جوری علی رو میشناسه که علی سلام الله علی می فرماد او برای من مثل من برای پیغمبره این یعنی این عشق و اون شجاعت از اون طرف مالک میفهمه معاویه کیه جرسومه فساد یک مش شیاطین دوره هم جمع شدن امراض ها و معاویه ها و کسیف ها و آلوده های شکمپرست شکمباره دنیا دوست خبیص لعینی که میخوان ارزش ها رو زیر پا کنند. کنن هیجده ماه هم جنگیده تو جنگ سفین همین آر در نظر بگیری؟ هیجده ماه الانه که به چادر و معاویه برسه با یه شمشیر این جرسومه فساد رو برداره دور امیرالمومنین رو خوارج گرفتن حضرت رو تهدید به قطع کردن الان یه فتنهی برپا بشه حضرت فرمود به مالک بگید برگردن وقتی خبر به مالک رسید برگرد مالک یقین کرد خبر مولاست دستی نیست میگن این شمشیر که دستش بود اینجوری داشت میزد تا گفتن علی گفته برگرد اینجوری برگشت میدونید یعنی چی؟ یعنی دل میگه بزن ولی چون آقا گفته نزن چهش جانم به فدایه. شما بزرگواران شیه های علی مالک، اویس، کمیل، حجر، میسم، مقداد، امار، عبوزم شما چی فهمیده بودید؟ یک طور چه؟ گفت وقتی امیر رو به طرف مسجد می بردن سلمان معدب ایستاده بود یکی عصبانی شد به سلمان داد زد سلمان گفت خود آقا ساکته؟ الله اکبر بر این مقام تسلیم، خدا آقا ساکته، مطابع آقای لذا فضل شازان، نیشابور رفتید حتما به زیارتش برید، بزرگ صحابه امام رضا فضل شازان نقل میکنه تو کتاب ال میگه دوازده نفر شدن، بعد از خانه نشینی امیرالمومنین المومنین صله توش بود زبه توش بود سهل فزل... ابن وف بود برادرش بود میسم بود اماار بود ادی بودن. من جمله سلمان دوازده نفر قسم خوردن هم پیمان شدن فردا شمشیر برمیداریم. میریزیم تو مسجد پیغمبر، ابو ابوبکر از منبر پایین میاریم. یا کشته میشیم یا حگ می گیریم. وقتی قسم خوردن صبح برن این کارو بکنن سلمان گفت اجازه میدید من باید برم از عدی اجازه بگیرم بی اجازه نمیکنم. احساساتی نباد بشین، باید وزیف همون چیه؟ سلمان اومد پیش امیرالمومنین. فضل به شازان تو کتاب الایزاح میگه. میگه وقتی به مولا رو عرض کردم، مولا فرمود که من شماها رو دعا میکنم خدا بهتون خیر بده ولی نه صلاح نیست. به جاش برید مناشده بکنید. که فردا اومدن مناشده رو شروع کردم که بحث مفصلی صلاح اجازه بدید وارد نشم. خب خدایا تو را به عظمتت قسم میدیم ما رو در مسیر ولایت علی و آل علی و تبری دشمنان علی و آل علی توفیق روزافزون عنایت بفرم.